دو چیز که هست مایه دانایی بهتر از همه حدیث ناگویایی از خوردن هرچه هست ناخوردن به و از صحبت هرچه هست به تنهایی در باغ چو قوره ترش اول دی شیرین ز چه گشت و تلخ چون آمد می از چوب به تیشه گر کسی کرد و باب و از تیشه چه گویی تو که میسازد نی دانی که سپید دم خروس سحری هر لحظه چرا همی کند نوه گری، یعنی که نمودن در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. در دهمه لعله لالگون صافی، بکشای زهل قشیش خون صافی، که امروز برونز می نیست مرا، یک دوست که داردن درون صافی.